بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والي وصحبه اجمعين أما بعد شوف هي سبهم الجمله شبهات المرجئه شنو ينه ك يقولون در بالقران گفته الذين امنوا وعملوا الصالحات زياده بالقران درس الذين امنوا وعملوا الصالحات ان هايك ايمان وردن وعمل صالح انجز فداش شجي بهشته خب در این ما این چینین می فهمیم. که خداوند واب عدف و ورد ایمان اونایی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دادن عمل صالح انجام دادن این واب, واب عدفه واب هم دلالت مغایرت داره یعنی عمل چیزی دیگه هست ایمان چیزی دیگه هست پس در نقیق عمل جز ایمان نیست اگر ایمان جزه، اگر عمل جز ایمان بود خدا هم میگفت یا یا الَّذین آمنون کافی بود یا میگفت الَّذین آمنون دیگه لازم نبود بیگه عمل صالح ها دیگه چرا بود پس چون وابعات اومده و در یک سیاق اومده پس عمل صالح چیزی دیگه هست ایمان هم چیزی دیگه حالا با جواب بودیم جواب چطور بایدونیم از لغت عربی و از اصول فقر ما باید چینی می‌گیم که واو در لغت عربی مطلقاً دلالت بر مغایرت نمی‌دهد. بله، شاید دلالت بر مغایرت داشته باشه مثل این وجه اول. وجه اول که دلالت بر مغایرت داره چینینه که بین معطوف و معطوف علیه تلازم نباشه. تلازم نباشه. یعنی بین آنها ربطی نباشه با هم. یعنی اونها با هم ربطی نداشته باشن. مثل خدا میگه خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض آیا تلازم بین آسمان و زمین؟ آسمان و زمین آسمان و زمین را خلقت کرد آفریق این باب دلیل بر اینه که زمین قسمت از آسمانه یا آسمان قسمت از زمین خیر هیچ تلازم بین اینها نیست این یک خلقتیه این یک خلقتیه درسته؟ این بله اینجا ما قبول داریم این واب مقایرت این چیز دیگر است این چیز دیگر است. لیکن در غیر این وجه ما قبول نداریم مثلا مثال دوم دو که دلالت بر مغایرت نیست یعنی yani ازدلالت بر این میدهد که هیچ مغایرتی بر اونها نیست بلکه جزئی از دیگری جزئی از دیگری یعنی yani معتوف فو... معتو جزئی از معتوفون علیه رو این زیاده که این الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا صَلَحَةً من جزء همینه مثلا در قرآن داریم مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ من که نعدمالالله و ملائکتی و رسول و جبری و میکن درسته خب شما ای مرجعی بدبخت شمایی که میگید عمل جزی از ایمان نیست و عمل چیزی دیگه هست ایمان نیست عمل چیزی دیگه هست ایمان, چیزی دیگه هست, ایمان چیزی دیگه هست آیا جبریل غیر از ملائکه هست خداوند میگه من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبرئیل و میکائیل غیر از ملائکه است این باب دلیل بر این است که اینها جبرئیل و میکا غیر از فرشتگان هستند اون کسانی که پیام از سوی خداوند وحی آوردهند یا مثال واضح‌تر خداوند فرمان میگه حافظوا علی الصلاوات والصلاه خب نماز را برحابه دارید و نماز عزق. آیا نماز عزق غیر از نماز های فرد دیگه هست؟ اینجا باب دلالت مغایرت داره یا نداره؟ نداره. مغایرتی نیست. بلکه نماز عزق جزئی از کل نمازه مفروض و فرده. ما در بچه اول گفتیم، در بابعت گفتیم که شاید بینشون تلازمی نباشه که دلالت بر مغایرت دارد. دیگه در بچه دوم گفتیم یه چیزی جزئی دیگری هست، معتوف، جزئی از معتوف کنه علیه که لازمه یه مغایرت نیست در این جمله در این سیاخی که این چینی نوابی باشه. وجه ثبه هم چنینه که بازم مغایرت بینشون نیست. مغایرت بینشون نباشه دو چیز. بینشون مثلا بین معتوف و معتوف العلیه تلازم باشه. و با هم رب داشته باشن نگاه بکنید. با در مسال اول گفتیم بین آنها رب تیده باشه. مثلا قسم آواتی و آسمان چیزی؟ این چیزی که. حالا اگر رب داشته باشه. قسمت دوم جزی از دیگری باشه. قسمت ثبه رب داشته باشند یکی لازمه ی دیگری است مثل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. الحق, وتكتم الحق الا کسی که بیاد حق را با باطل بگوشونه باطل را بیاره حق را مخفی بکنه آیا کهمون حق را کرده نکرده حق را کرده پس کتمان حق لازمه شیه تلبیس حق به باطل تلازم بین هم بین این دوتا تلازمه آیا تلازم باشه دلالت بر اینه که اینها با هم مغایرتی مغایرت با اینها با هم مغایرت, مغایرت دارند خیر اینجا با هم مغایرت دارند کتمان حق همون تلبیس حق و الواطل لیکن وجوهش با هم فرقه این یک شیوه هست این شیوه دیگری لیکن بینشون تلازم وجه چهارم وجه چهارم در بابعد باز هست دو چیز یه چیزی هست دو چیزی یه چیزی هست معتوف معتو، یه چیزی هست اینجا غیر ممکنه غیر ممکنه مثل دو وجه قبل غیر ممکنه که مغایرت داشته باشن غیر ممکنه مغایرت داشته باشه اگر بگی مغایرت دارن کف گفتی چرا کفره مثلا غافر و زم و قابل و تو غافر زم کیه پروردگار قابل تو کیه بازم پروردگار شمایی که میگید وابعه دلالت بر مغایرت داره بیاره به ما توضیح بدید این که کدوم خداست این کدوم خداست و خلاصه بحثی میشه اینجا خلاصه بحثی این اینه که ما با در جاهای وقتی که بین دو چیز تلازم نباشه قبول داریم که دلالت مغایرت داشته باشه لیکن در وجوه دیگری قبول نداریم و لغت عربی هم شاهد و گواه هست بلی مسئله که در خیلی از جاها در سه وجه بین چیزها مغایرت نیست با وعاد با, وعاد با وعاد بیاد بین جدو چیز مغایرت نمیفته به چیز با هم فرقی نمی کنه و این بحث بحثی در لدین آمن آمن و صالحات چه دلیل و مدرکی دارید که مثل واجه اول بینشون تلازم نیست دلیل بیارید که بینش را تلازم نیست مثل آسمون و زمین واضحه؟ شبه چارم فهمیدیم؟ لغت لغت باید یاد بگیریم امام امن تیمیه در کتاب قضاسته موسیقی میگه بر هر مسلمان واجبه که لغت حربی یا یاد بگیره چرا؟ چون خداوند ما را دستور داده تدبر قرآن یا دبور آیات قرآن که ما دستور داده قرآن را یاد بگیریم و بفهمیم و درک بکنیم و تدبور بکنیم پس چون تو دبور حاصل نمیشه مگر با لغت عربی پس لغت عربی واجب میشه همونطور که بوزو واجب برای نماز خوندن لغت عربی هم برای تدبور قرآن واجب این اهمیت لغت عربیه فهم دادیم سخت هست لیکن سختی که کنار هم بذارید مرتب بکنید آسوم میشه شبهه چهارم شبهه بعدی نارم؟ شبه شبهه چهارم شبهه بعدی؟ شبهه بعدی نارم جوابی نداری؟ جواب دارید خلا سه آن شد رفت خب،, خب ما گفتیم ما باید زمانی که اثبات میکنید این واقعه هست شما باید دلیل بیارید گفتیم بهشون توه شما دلیل بیارید که این دوتا بینشون تلازم نیست چون در یک وجه اگر تلازم نباشه تا خط مغایرت بینشون آراش چه مدرکی هست بر اینکه بین این دوتا تا تلازم نیست چه دلیلی هست که بین این دو تلازم نیست حالا شاید اونا بگن خب ما اینکه مثلا ما ادله داریم عدله که برای خب نه اونا که برای خودشون از آد... ادله همین تا همینجا خلاصش کردن یعنی تو تو حمید آ... در همین بحث خلاصش کردن یعنی برای خودشون حالا ادلهشون احادیثش هم خواهد اومد حالا این حدیث چهارمو گوش بدید این ادلهشون یک از ادلهشون خواهد اومد بر این که عمل چیزی دیگه هست ایمان چیزی دیگه هست و بنش تلازم میسهالا این دلیل شبهه چاره مشون که دلیلی هست برای اثر عقب چنین میگه که در حدیث داریم حدیث ابولیسه سمرقندی ابولیسه سمرقندی از ابوری روایت میکنه که میگه که جاء وفد ثقيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بافد ثقيف منى النادر الله فقالوا يا رسول الله الايمان يزيد وينقص سؤال فقال يا رسول الإيمان يزيد وياقص إيمان كم زيادة مشه نه الإيمان مكمل في القلب إيمان در قلب خامله زيادته وكف ونقصانه وشرك زيادته وكف ونقصانه وشرك إيمان كم زيادة مشه إيمان يكتشه هست فسدر هل تجه عمل جزء إيمان نيست ایمان یک چیز هست در خلبه اگر یک تیکش بیی همه چیز همش میری حالا این شوبشون جوابش بدیم؟ ماقع عدلمون گفتیم در بحچه ای که عمل تلاظم داره و با ایمان و عمل جزی از ایمانه که دلمون رفت گفتیم میری در بحث کمشون زیاد شدن ایمانلی ایمان رو بدون مسبببهن شبه در اون م بااحث عدل از آنون ن گفتیم و لیکن شوبهات اینا رو پاسخ بریم اولا این حدیث موضوع چرا موضوع هم از لحاظ مد معلوله هم از لحاظ اصناد اما از لحاظ اصناد راویان حدیث از ابو مطیع تا ابو اللیت سمرقندی همشون مجهولن تترابي فكونن باشن همشون مشغولن از ابو مطير راوي اين حديث تابو لسمرقندي كتبوري رنواد اما ابو مطير دو عمان اما ابو مطير يك از راويان حديث كي اسمش حكم الحكم ابن عبد الله ابن مسلمه الحكم ابن عبد الله ابن مسلمه خيلي از علما برای تضعیفشن او را ضعیف میدونن حالا غیر از این که ضعیف حالا ببینیم از جمله امام احمد ابن عدی یحیاء ابن معی تارا بخاری ابو داود نسائی ابن حبان و ابو حاتم راضی و غیر از اونها زیاده تا جایی که ابو حاتم راضی چینین میبوید؟ كان hva medier mergi enn kthaba Kjær hva der Hedolet Kjær hva der Zabt Drukust Femmergi Hva Kjær hva medier Mufasher Nes Kjær hva medier Kjær hva medier در اسناد شخصی هست به اسم ابو المهزم ابو المهزم و زاره درووشت اسمش یزید بن سفیان فریدمن حجاج و نسائی گفتن متروکه تا جایی که امام شعبی میگه ان هذا رجل یضع الحديث ان هذا الرجل یضع الحديث این duru bana zulmi bende ali hadise duruqin mige mige taje ki imam sahabe mige mige la'ataytu muhu fe lays la hadatukum sabina haditha agek puleki beesh beri puleki beesh beri aqta hadis lat mige alain kholase bahsi ki ala imam ibn al-juzay dar همچنین سیوتی در لآل الموضوعه جلدی یک صفحه چلدی یک و تنظیح و شریعه تعلیف کنانی جلدی یک صفحه چلانو حالا شاید یک شخصی بیاد یک فیلسوفی بیاد بکت ها شما محدثین یک شخص بیاد افتاد تحریف وسط روایت میکنه شما هم نمیدونید با جا حالا ما یه حدیثی ره ترزینه یک شخص بدونن که یک تا روایت درو میگه دیگه از, از حدیث ادش قبل قبول نمی کردن این اشخاص متروکن امام نثاری و شوگا دستور ترکش دادن حجرش دادن کسی باش ننشینه چطور تو ما ده محدثی میزنید که هم حدیث رو نمیدونن چطور روایت بکنن دو نمیدونم همینجوری روایت کردن از کجا معلوم که صحیحه و ضعیف قاتی نشده نخیر اینقدر حریص بودن اینقدر دقت داشتن که نمیذاشتن که کسی بیاد kasi asasi ke majruh naqb konan hamintori amma az ilhad makk athna hadith al-khalif wa sarih al-quran wa sarih al-sunnah in wajh awwal wajh thawum in ke یک کش بره همش میره گفته که مقالفت با عقل و همچنین با نصوص, نصوص سریح سنت از جبل حادیثی که اومده لا یبقا فراجل الا حبت خردل من ایمان تا جایی که مثلا یک شخص به اندازه یک ذره گندم از ایمان در قلبش باقی نمیمونه این شخص اینقدر شخص گلام میکنه که به اندازه یک ذره ایمان چوتوک در این ای شخص ایمانش کم شده. اینجا, اینجا در این حدیث داریم که ایمان کم نمیشه یک کی از در خلق. در اونجا دارن که نه ایمان کم میشه تا جایی که یک ذره میره. نمیشه اصلا توفیق توفیق داد بین این حدیث و اون احادیثی که ما داشتیم و به اصطلاح صریح قران. خصوصا ادله که در سنت داریم یک شخص مؤمن میتونه بین ایمان و بین شعبه از کفر و می تونه شواغه های از لف داشته باشه اذا حدث كذب اذا اذا وعد اخلف او يا مطلق دروغ گفتن منافق بودنه ایمان از بین میره عمل خیر بس داره با حدیث داره با خود قران منسلی زیادی من النار من كان في قلبه مثل حبه خردل ایمان من را منكم منكر فليغيره بيده فاخر ما يقول ذلك اضعف الايمان ايمان ضعيف ايه المنافق 3 اذا حدث كذب وخرش 4 ما نكون ما نكون نفي كان منافقا خالصا حدث زياده علي ابو ذر ابو العازر ابو ذر ابدا الجاهليه وانا بيظهرك ياك بابو ذر اننا كان منافق جاهليه نقص ايمانه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اعمال زیادی داریم اعمال زیادی داریم که که ایمان را به طور کلی از بین نمیبره بلکه ایمان را کم میکنه خب حالا مسائلی هست زیر این مسئله فرواتش خیلی زیاده فروات این مسئله خیلی زیاده بحث جنس عمل میاد آیا الوانی مرجعی هست یا نه آیا عمل را جز ایمان نمیتونه چه خلافی هست بین مرجعه و مرجعه کقه ها و؟, و چرا این چینی تهمتی به الوانی زدن حالا این همه جز تحقیقاتی هست که ما میخوام داشته باشیم زبن همین بحثشون گفتیم که این بحث میخوام کامل بشه حالا قبل از اینکه بخوام به این مباحث رای پردازی حاشیه بریم روی اطل مطلب هر هرچند که ما گفتیم که شبهات دیگری هم هست که خواهد اومد حالا تا اینجایی که خوندیم اختلافی که الان این مرجعه داشته آن مرجعه فقه ها على الخصوص چون اولین کسانی که اومدن بحث شبهه هموزیاد نشدن ایمان و مطرح کردن مرجعه فقه ها بودن مثل ابو حنیفه و حماس خب حالا این دو شخصی که هستن صاحب مذهبه و ماتردی ها هم مذهبشون در اعتقاد در ایمان از این دو نفر گرفتن آیا اختلاف بین مرجعی فقه ها لفظی هست در آقبت یکی یعنی یک فقط در لفظ هم اختلاف دارن معاله صرف بدها یکی هست؟ یا اینکه اختلافشون معنوی هست؟ چه میگید؟ اختلاف لفتی یا معنوی، در اصل هم فرق دارن؟ یا فقط در لفت، فقط در ظاهر؟ مرجعی فرقان میگن، عمل جز ایمان نیست، ایمان ما و اوباق فرقی نداره ولا خلاف جوهري يا خلاف ظاهري من اول كانوا الا اهل سنه اهل سنه اهل سنه ان اختلاف المرجئه فقهه اهل سنه جوهري ولا ظاهري لفظي نفس معني لا يعني خلاف لا, لا زي مرحبا گفتن ایمان چیه؟ همو شرطه که کناون چی؟ فقطو چرا تو؟ رو با خبری این مساله مطرح کرد خب الان این مشکل که هست اینجا میگن که ایمان شما با شما مثل رسول الله متو به راه مری یعنی چی؟ همان کاری به ایمان نداره حالا هر چن که در اخر در آخر گفتند که اون عمل شاید الا انسان در مقابله توبیخ بشه ولی کن کار به ایمان نداره ایمان ثابته حالا میاد در ردش اختلاف در نزد علما اون چیزی که امام تحاوی و ابن عبد الراز حنفی بهش گرایش داشتن که این اختلاف ظاهریه لیکن علامه البانی همچنین شیخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر و همچنین شیخ ابن عثیمین و اما شیخ دیگر بر این باورند، بر این اعتقادند که اختلاف بین مرجعی فقه ها و بین اهل سنت اختلاف معنوی است چون مشکل در اصل اعتقاد مشکل در اصل اعتقاد حالا وجوهش زیاده اونایی که، مثلا استدلال هایی که حردند که ایمان یکی که هست اگر یهتی کشور همش میره ما قبول نداریم شن بلکه ایمان گفتی کم و زیاد میشه با صریح ح قرآن مخالفت داره این گفته کجا اختلاف لفظیه؟ اختلاف معنویه این میگه اصلا ایمان کمو زیاد نمیشه و حفه میگه ایمان کمو زیاد نمیشه یک دیگه هست ما در قرآ داریم مید توولی مااد رو زادتم میمانم خب پس بحث در خود ایمانه در اصل خود ایمان در اصل خود ایمان, اصل خود ایمان. کم زیاد میشه و باشون اختلاف داره اهلص و بموردی فا اختلاف داره اونا میگن ایمان یک دیگه هست ایمان ما با ابوبکر و عمر و دیگر اصحاب فرقی نداره ما میگیم نه فرق داره چون ایمان کم و زیاد میشه و قران و سنت هم بر همین گواهی میدن که ایمان کم و زیاد میشه الان مثلا خود الیوسف و قاهر کثرت اننا قلنا مثلا سهولتشون در خود نماز ببینید نماز سریع میخونن و یعنی اهمیتی به اخارتشون نمیدن میدونم نمازشون اهمیت خود این اعتقاد سبب شده که فقط به ظاهر قضیه نگاه بکنن نهان تدبر داشته باشن در نمازشون در طاعاتشون در عباداتشون این خودش این بحث ایمان کم و زیاد نشدن ایمان سبب شده که در اعمالشون هم نفوذ بکنه به خود به خود علاوه بر اون صفیهاشون کلا از خودشون تدبر و فلان داره ما این مسئله تفاظول ما یعنی یک شخص من مثل من و, من و شما آیا مثلا کسی از ما اجازه میده به خودش که دیگه که من مثل او بکرم از لحاظ ایمان قوت قلب حالا هم همه قوت قلبی که ما میذانیم اسمش ایمان ما هیچ وقت نمیتونیم خودش قدم ما میدونیم که هزاره بار ایمان ناقص داره چیزی هست که ما فترتن میدونیم دیگه لازم نیست که ایمان تلقیم بکنه. چطوره که شما میگیم ایمان ما و او بکر با هم یکیه. نصوص اصحاب زیاده. نه نه ادلله اصحابه که میگفتن عمر بهتر از ما بوده. او بکر بهتر از ما بوده. نصوص اصحاب زیاده. اصحاب خیلی ها میگفتن که چی؟ میگفتن که, که او بکر از ما بهتره. و تفاضل می دونستم بین خودشون یکی رو بر دیگری برتر دونم ولی مرجع فقهان همه رو یکسام می از لحاظ ایمان همه یکی هست هم. اون مشروب خار رو اون نمی فلان کار همین چیز به همین خود حالا ما همین گفتیم اینا و من دارم روگروب بشم با خوارج مشکل اینجا روگروب بشم با خوارج اونا میگن اونا میگن هر فاسقی قافره اینا آمدن در زدش هر فاسقی مومنه و کامل ایمان علسنت هم در وسط باها جان کافت نمیشه ایمانش کم میشه شما که میگین ایمان همیتون رو زیاده یکی که هست کم نمیشه ما بگیدم باید رو کم میشه علسنت اینجا هست ما گفتیم همونطور که اختلاف با خوارج جوهریه اختلاف من با مرجه هم جوهریه در ذاته در منو با هم فرق زید باید ح <تصفيق> <تصفيق> خلا بخاطر همین که در اصل در مذهبشون رعیه اینا در جز مدرسه رعیه رعی مقدم در نظرشون همین چیز قیاسه بخاطر همینه که ابن حضر شدیدن باشون مخالفت میکنه میگه اصل اساس مذهبشون روی قیاس اصل اساس مذهبشون روی قیاس هرچند کلو گفته میشه که کل احادیثی که در مذهب هست یعنی امام عظم روایت کرده کل احادیث 144 حدیثه سایه چوارده هاش که ضعیفه حالا بقیه سیت بین حسن و ضعیف هرچند که به درجه صحیح نمیده بین حسن و ضعیف بین انتقاد هایی که هد انتقاد هایی محدث اینه مکاری به عدالتش نداریم حالا هرچند که در تحصیل حالا زبد در نزده ما ضعیفه زبد نداره و همین روایت هاش تضعیف میشه حالا خود امام ولیکن از لحاظ مذهب بنیه و اساسش روی رعیه روی فکره و این اساس میبینید خود ما نصوصی یکی طوری داریم نصوصی یک چیزی میگن اینها چیزی دیگری میگن ما ما اینو میخوام میگیم بین نصوص و بین فکری اینها تضاده است. با همجور در نمیاد خود از ما میخواد ایمان رو منزیاد بکنیم تقویت بکنیم حالا میاد عدلیه که چطور ایمان رو میشه تحوییت کرد اینا میگن نه. ایمان رو نمیشه تنبیت هست ایمان یه چیزی هست در قلب ایمان کم و زیاد نمیشه غیر از این که مرزبشون روی تناقضه چطور میشه که یک شخص ایمانش کامل باشه و در صورت مثلا اشتباه میگه کسی مشروب پرد مستحق عقوبت هست تناقضه میگن یک شخص ایمانش کامل ولی چون مشروب پرده عذاب میبینه مستحق عقوبت هست و چته که ایمان کامله صددرصد قرن فیکس دیگه مستحق عذابت باشین شخص کامل ایمان این شخص مؤمن قوی یعنی با فکر و عقل و غیر از که با قران و سنت نمیکنه با فکر و عقل ما هم نمیکنه حالا مسائلی که میگن از جمله اینکه عقوبت روی خود عمل واقع میشه و اگر قرار باشه عقوبت روی خود عمل واقع بشه یک شخصی از ما گناه ها نیکرد این الان این توبیخ شد گناه در مقابل گناه من مشروب خوردم فلان خوردم توبیخ شدم حالا وارد بهش شدم بهش برای خودت درجه درجات داره فردست داریم فلان داریم منو کجا بذارم؟ اگر سوار باشه ایمان کم زیاد نباشه. جام کجای بهش باشه؟ دیگه طبقه نداره. این نصوص چه کار بکنیم که فردوس بالاتر اینجای بهشته و فلان و فلان و درجات برای واسه خودش. این درجات چه کار بکنیم؟ خب خاتمه این بحث چینینه که پرچند که خیلی را معال این گروه چنین که گروه از مرجعه چنین گفتن که کفر این حرف سبب شده که بگن کفر یک صفت داره کفر حالا این شخص شخصی که مؤمن شده الان ایمانش هم کم زیاد نمیشه خب چطور میشه که این شخص حالا کافر بشه گفتن که این بچه سوم رد به اون خاص گفتن که کفر یک صفت داره. و اونم عدم تصدیق. یک شخصی دیگه من خدا را باور ندارم. و اگر شرم دیگه یک کسی کافره به خاطر اینکه تصدیق نداشته اون شخص. آیا ما خودمون؟ در شرع محرم یک شخصی بیاد قرآن رو پاره بکنه. کافر هست یا نه؟ چیکار بکنیم با این چین آیات؟ که خداوند میفرماید لا تقصد رو خود نیارید که می گفت کسبتون بعد ایمان کردون اون اصحابتون نگاه بکنید در بعد از جنگ جنگ خنند اومدان گفتن نگاه بکنید مسلمان ها شکمشون فر شده شکم گنده شدن که اصحاب مسلمان ها سا غنیمت میخورن چه تو غنیمت از طرف خدا از نه که کافر شدید بعد از ایمانتان بعد از ایمانتان یعنی بعد از اسلامتان کافر شدید نیچی کفر از برد الان چی برد که بیاد به قرآن که تیه استهزا بکنه مسخره بکنه پس ما میدونیم که غیر عدم تصیق این شخص نگه تممن خدا را باور ندارن بیاد به دیگه مذخره بکنه بیاد به رسول ما مذخره بکنه بیاد به قرآن مسخره بکنه بیاد به یه چیزی از دین مثل ریش نگاه بکن. ریشاش رو نگاه بکن. حالا دیلشون خوش ریش گذاشتن. مسلمان شدن رسی خودشون. یا پیراهناش نگاه بکن. تو آب رفته. مثله به دین. مثله به سنت مصطفی. دختار هم سنت را آیت می کند. به سنت مصطفی هست. کفر اتبرد. لطه تاگرد. دیگه روز نمیخواد خواد بیارید. اسلامو دارید زیر سوال می برید شرع متحد شرع برگزیده ای از طرف خدا او این یعنی سفادتان کفر مال حرفشون که وقتی گفتن ایمان تمو زیاد نشه دیگه کفر اومدن این چیزین تعریف کردن گفتن تو کفر نی آدم تصدی ما کفر کفر استهزاء داریم کفر جحود و استکبار داریم و جهت بها den god inn, og kom opp. Og skrereen kunne lide det. Pfing seg hva? Møte disse jo hva lide dette unermbe. Hva er lagford? Ja tak, H subscriber på mir. Der er و با سختی و با الفاظ جرح شدید اونا رو مجروح کردن. اب واحد بیچاره با جروحه و درها نمی‌عرفش. هي ميد از بتدي از اهل سنت اومدن مرجئه بابا الفاظ بدی یاد کردن مثلا تا جایی که مثلا امام اوزائی چنین میگه میگه لفتن المرجه اشد على الامه من فتت الازارقه. فتنة بر امت من از فتنه عزارقه از اون زندیکان از اونهایی که خدا رو باور نداره فت از فتنه اونها بدتره چرا مثلا شما خودتون در نظر بگیرید یک شخصی گاپر برای خودش طرز داره طلاق داره نمیدونم مفرمات داره افتی داره وقتی که من گفتم ایمان کم از زیاد نمیشه یعنی چی با دل پاک باشه هر کاری دلت خواست بکن ما حرف همین دیگه با در همین میدید مشروب ارجا در اومت در همین کچه و خیابه. گفتم بهتون تو سلیب آقا گذاشت رو گردنگ گردنمت روشیده یا رو پیرانش بهش میگه با جان سلیب کفرا امام حنفی های چیز میگن در کداب های میگن یکی از کفراهایی که بخشیده نمیشه عرض دلش پوشیدن سلیبه. یک شخصی صلیب بپوشه یا روی پیرهانش باشه. کفر ادباره مخجد از ملت. والا نمیدونم چطور جنبندی بکنین بین این کارشون و بین این حرفاشون. تناقضا هست. ولی خبالا ما اینو میگیم. یک شخصی یعنی در جامعه خودمون وقتی که می... میگه دل پاک باشه دیگه حرام باستش آزیه. مشروب خوردن. زنا کردن میگه دل پاک باشه آیا دل پاک بودن به درد میخورد؟ این فتنه هی هست از مرجع اومده بخاطر همینه که دیگن فتنه اینها اینایی که میان کم و زیاد نمیشه مجتمعات اسلامی را در زنها و فحشا و منکرات و مشروبات میگذارند و قرار میدهند عاقبت این امت بدتر از امت خواهی بنده ولی مشرکه عاقبتش بدتر فساد و افساد در روی زمینه حتشن که شرک شناعتش بتره لیکن شرک, حتى شرک و ما کنم معذبینا حتی نبتر رسولی شرک را خودمان مؤخر میکنی از اینکه رسولی بیاد لیکن بحث زنا و فحشا و اینها دیگه برای امت مسلمان عوضی درش دید که بگه ما عوض داشتم و فلان داشتم و الان بیاد هر کاری دلش خواست انجام بده خب از جملات امام اوزاعی چنین داریم لیس علی الاسلام شیع اون اضر رو علیکم من ارجا بر اسلام چیزی ضررش و زیانش بیشتر از ارجا نیست اینم این گفته هم روایت از قطاده یحیاب نکدیر خیلی از این میتابه خیلی از این میتابه چرا این میتابه این با این ها بخور دردن بخاطر عاقبت این حرفی که سبب اینچه نگم های هایی میشه من گفتم هرچند که اومدن بین هر پاشون بکنن لیکن خب این چاله هایی که به وجود اومدتر در, در مذهبشون پنجمین وجه در رد اونها این که اونها اومدن ایمان را تعریفش تعریف لفظی کردن گفتن که در لفظ در لغت تعریف لغویش ایمان این تعریفه خلاص تام شد اگر قرار باشه که هر شخصی از ما بیاد بگه نمازم لغویه فلانم لغویه سیامم لغویه خب دیگه چی برای اسلام میگونه این جنایته در حق نصوص قران و سنت که ما بیا الفاظ شرعی را با لغت شرحش بدیم یا با تعریفش بکنیم لغوی بدیم هر که ما گفتیم در لغت ایمان به هیچ بش تصدیق تسیق تنها نیست متقاضف نیستن بلکه شامل سلوکات و فلسفه تسیقه بس خلاصه بحث اینه که با این وجوهی گفته شد با این شدتی که اهل سنت داشتند اختلاف بین اهل سنت و بین مرجعه فقهام میشه اختلاف جوهری این در خود اصل مذهب به خاطر تعارض حرفشون با خود قرآن و خود سنت نبوی، و صریح عقل، و صریح اقوال سلاف بخاطر این تضادی که پیش اومده، این اختلاف، اختلاف معنوی نجوهری، معنوی ایست و ارسید نلپسید، خب خود، شو بیردن، اما حنیفه، این تحاویی و مفروخ، میند رد میده؟ میند رد مثلا میند رد میده، ما هم میده، میند رد میده، میند لیکن در آخرش میگه خب میگه که ك... اختلاف معنوی یعنی آخر آخرش میاد میگه ك... چون عاقبت کار را قبول دارن که ك... انسان توبیخ میشه بخاطر عملش بس عبرت به آخرته ب... عبرت به عاقبته کافی همین بس با سنت متفقن این کافی نیست ما گفتیم این کافی نیست خب من تعاقید تعاقید نکنم خیلی نه نه قول چنا را سعی می که تعویل بکنه و سعی بکنه که بگه که هیچ فرقی با احل سنت نداره بگه فرق و بونه بین این دو تا گفته قول اهل سنت و قول مرجعی باقه ها زیاد و شدیده خب دست از قلم برداشتید توقع نداشتید این چین این بشه حالا اگر حندی بود داره اینجا دیگه کلمون رو میکنم سرمون از جدا میکرد. ما متاسفانه به غیرت ما بر نمیخورد وقتی که خدا این چینین حرفایی زده میشه. در مقابل قرآن این چینین حرفایی زده میشه. ولی ایکن اگر امام بگیم فلان امام اشتباه کرده و دنیا با قیامات در خواه زیر زیرونو میشه دنیای که چرا شما آمدید نهب کردید فلان امام. انتقاد ما بخاطر به خاطر غیرت ممکنه به خود ایمان داریم به خود و خداوند داریم رسوس قرآن داریم اگر این نبودن هیچ وقت ما به خودمون اجازه نمیدادیم که بخواهم کسی را نفت بکنیم یا زیر سوال ببریم خب کسی سوال داره در همین زمینه در همین راسته عقیده هم عقیده نه حقیقه گفتیم که وقتی اول شد که خوارش اومدن و مناظره پیش اومد ما ببینیم که همچنان مناظرات هست و اشخاصی میان که تحت تأثیر فکر مخالفین قرار بگرن محمد رشید رضا الالوانی میگه عقیه سلف را من از طریق محمد رشید رضا دونستم من سلفیت را از اونجا چنانستم بگه خود محمد رشید رضا میبینیم که در کتاب تفسیرش منار میاد گفته محمد عبدالشیخش را سرجیش میده در اینکه که تجالی نیست یعجوری معجوری نیست و میاد خیلی از گفته های معتده رو ترجیح میده و خیلی از نصوص قرآنی رو تعلیل میکنه تعلیل های معتدله و جهمیه و گفتیم ای عیب و علت به این برمیگرده که انسان با یک قومی درب زفته و احلیتش نداشته باشه متاسفانه اینجین چیزی هست یعنی خیلی از اشخاص میرن هنوز خامن هیچی نفهمیدن کتاب های سروش میخونن، بازرگان میخونن آخرم و آخرش به ما هم میاد بگه من سنی حالا این سنیتش کجا حدیث بهش میبینی بگه آحاد قرآن بهش میبینی بگه این هم داره باید به بت نگاه بکنی هر چیز واسهش بت میگذاره، شکم میذاره این فکرها پیش میاد، صحابه میشن مجروع دین اسلام میشه هیچ دین اسلام فرقی بین بودایی و نمیدونم مسیحی و نسرانی و نمی یهودی و مسلمان نمیذاره همهشون پیش یک یکسان و هر کاری هم خاصی میکنه در سفانه خامودن ما و داخل تضییر رفتن بدون بررسی بدون شناختن رو گفته شدن این چنین آثار منفی بر ما گذاشته و همچنان داره خلاخوسن های که دانشگاه هستن کردن این چیزا خیلی برای شما مهمه شما باید بدونی این مشکلات هست وقتی که ما در مدرسه میخونیم دست میگن و فلان و خود به خود خیلی از دوستان ازشون سوال میکنین کچه و خیابون خدا کجاست؟ همه جا همه جا تا جایی که میگن حتی در سک معاذر خدا هست خب این ها به خاطر خامی ماست به خاطر اینکه ما پخته نشدیم به خاطر اینکه ما سنت رو خوب نکنیم چند سالی بیشتر نیست که همین مختصص های بخاری ترجمه شده بخاری رو کسی نمیشنافت مسلم رو کسی نمیشنافت حالا چه برده به عقیده عق که در کتاب ها نفته شده در کتاب فجفی برمحجب و کتاب شریع آجوری و کتاب ابانه ی ابن بستک از مهمترین ترین کتاب های مصند اعتقاد خب بر این راستا در این زمین چیزی هست سبحانه کلنام بخمدی که سبحانه